بود یا پری روز یا ماه پیش یا سال قبل یا هزار سال پیش که آرزوی همیشه هم را به یاد آوردم. آرزوی نویسند شدن را. این حوث را اولین بار معلم انشایم در سال اول دبیرستان در دلم انداخت. او بود که گفت تو استعداد نویسندگی داری. او بود که قطعات ادبی پرسوز و گدازم را اول در روزنامه دیواری مدرسه و بعد در یک نشریه خانوادگی چاپ کرد و این هوس را در من پایدار کرد ظریفه را هم این هوس به دام کشید او را نخستین بار در جلسه ی قصه خانی دانشجویان دیدم داستانی خواند درباره زنی که بعد از مرگ همسرش به قبرستان پناه میبرد و در کنار مرده‌ها روزگار گذراند. داستان تنان تأثیری در من گذاشت که برای مدت ها ظریفه را در حیعت همان زن قبرستان نشین به یاد می‌آوردم در پایان جلسه خودم را به او رساندم و نکاتی را درباره مرگ به او تذکر دادم با او شگفت زده به حرفهایم گوش کرد و در نهایت گفت داستان من درباره زندگی بود نه مرگ گفتم مگر فرقی هم می‌کند بعد از آن جریان تا مدت‌های مدید مثل دو رقیب در جلسات بسخانی درباره مرگ و زندگی قصه میخواندیم و همانجا بود که مجید را هم دیدم میدانستم بین او و ظریف سراس سر است ظریفه درباره زندگی می نوشت و من درباره مرگ و شگفت اینکه همه می گفتند داستانهای ما ساختار یکسانی دارند و درباره یک موضوع یعنی هم جواری مرگ و زندگی سخن میگویند یکی از همان روزها بود که ظریفه را که آن روزها او را بانوی زندگی می نامیدم به یک رستوران کوچک نستی که دانشگاه دعوت کردم و او که مرا آقای مرگ می نامید با گشاده روی دعوتم را پذیرفت. بار اول هیچ اتفاقی در آن گوشه دنج رستوران کوچک نیفتد. اما بار دوم در کمال شگفتی من اول عاشق دستهای ظریف ظریفه شدم و بعد عاشق چشمها. لبها، بینی و در نهایت کل پی ظریف زریف اولین ای که در پاسخ تمنای من گفت این بود. مرگ که آشق زندگی نمی شود. و من در حالتی شگفت دریافتم که مرک فقط و فقط عاشق زندگی است. و همانجا بود انگار که زریف نام این حالات و دریافتهای مرا حالات و دریافتهای عرش گذاشت. و توصیه کرد هرگز در همم به این حالات دچار نشوم مجید اوایل سعی می کرد رفت آمدهای من و ظریفه را نادیده بگیرد. اما وقتی یک روز موقع گذشتن از خیابان بازوی ظریفه را گرفتم تا تاق شد و به طور جدی به من هشدار داد. من خندیدم و او عصبانی شد، و به جای در با من دست ظریف را گرفت و او را به دنبال خودش کشید و مثل کسی که زن رسمی و شرعیش را تنبیه می کند در خیابان جلوی چشم های و آبران دو سیلی پی در پی در گوش ظریفه خواباند. ظریف ساکت بود. حتی زره اعتراض نکرد. اما با چشمهایش از من خواست که بهای عاشقیم را بپردازم و من پرداختم. اولین بار بود که گلاویز می‌شدم. آن هم با یک مرد رقیب و در حضور معشوق آن زمان به تنها چیزی که می‌اندیشیدم غلبه بر رقیب بود اما بعدها آن صحنه را دعوای دو وحشی بر سر یک ماده میدیدم در این دعوا من پیروز شدم اما ظریفه را تا مدتها از دست دادم بعدها به من گفت مجید پسرداییش است و از کودکی با هم بزرگ شدند و پدر بزرگ و مادر بزرگ دیدند که عقد آن دو در آسمان ها بسته شده است. حوث نویسنده شدن، مثل حوث پولدار شدند، شدن، استاد دانشگاه شدن، یا صاحب خانه و ماشین شدن، حوثی پایان ناپذیر است. وقتی اولین مجموعه داستانهای کوتاه هم را نوشتم. مثل اولین قدمی که نوزاد بر می دارد خودم را در ابتدای راه دیدم. آن مجموعه را به هر ناشری دادم خانده و نخانده پس داد آنها که خانده بودند گفتند و گزنده است و آنها که نخوانده بودند به زبان بیزبانی گفتند که برای یک نویسنده نوپا سرمایه حرام نمی کنند. مادرم اینجا هم به فریادم رسید درست مثل زمانی که اولین گام های کودکیم را بر دستم را گرفت با پولی که در اختیارم گذاشت آن مجموعه یک را با نام درود مرگ در هزار نسخه چاپ کردم. اما جز نسخه هایی که با امضای دو چشم خیره در یک دایره به دوستانم تقدیم کردم وقیه نسخه ها در انباری خانه من و شاید پوسید. این شکست دلم را لرزاند، اما منصرفم نکرد. با خود گفتم من نویسنده از آن آیندگان هستم و باز نوشتم. همین حوث نویسنده شدم بود که مرا راهی مناطق جنگی کرد. این علی بود که گفت باید مرگ را در هیئت دیگری نیز ببینی. او بود که گفت مرگ میز بان با زیافت جنگ است. گفت مرگ در آنجا رفیق شفیقی است که همگان را به تصاوی در آگوش می کشد. باید بنویسم. باید روایت کنم. باید در این خلاع بی سر و سامانی به اندیشه هایم خاطراتم و گذشتهام بدهم. باید از جایی آغاز کنم. از کجا؟ این همه آدم، این همه روایت، این همه گذشته کدام را برگزینم. ظریفه از مادر بزرگ اکرم و سادات شروع کرد. راستی کارش به کجا کشید؟ مادر بزرگ او را امروزی کرد یا او مادر بزرگ را یک شخصیت داستانی ساخت. باید همان بازی همیشگی را در پیش بگیرم. باید با ظریفه مسابقه بدهم. باید من هم مادربزرگ را بنویسم. مادربزرگ ظریفه را که دید، گونه هایش را بوسید، طوری که قرمزی ماتیکش روی دو گونه ظریفه بر جای ماند. ظریفه که مادربزرگ را دید، مثل اینکه جن دیده باشد، دست و پایش را گم کرد. پیرزن به تنها چیزی که شباهت نداشت، یک پیر هفتاد ساله بود. ابروهای باریکش را بامه چنان کشیده بود که گویی از ابتدا چنین بلند و باریک بودند موهای رنگ شده زیتونیش را به سبک جوانهای فیلمهای آلمانی سیخ سیخ کرده بود یک گردن گردنبند بلند از خرمهرههای قهوهای رنگ به گردنش آویخته بود و چهار حلقه گوشواره به هر یک از گوشهایش آویزان بود شلوارک جین پوشیده بود و یک بلوز صورتی هم روی شلوارک انداخته بود ظریف تا خود بیاید مادر بزرگ جعبه لوازم آرایشش را آورد و دست بکار شد. به ظریفه که در بحت عجیبی گرفتار شده بود. پند از پی پند می داد. جوانی را به هیچ قیمتی نفروش. سیاست می آید و می رود و با خود جوانیت را میبرد. برد. پول می آید و میرود و با خود تازگیت را میبرد. مردها میآیند و میروند و با خود تراوتت را میبرند. زندگی کن دختر جان، زندگی؟ جوانی کن دختر جان، جوانی. چشمایی ظریفه حالا درشتتر و زیباتر شده بودند. لبهایش جم و جورتر و بودند. مادر بزرگ مشغول بود و ظریفه مثل یک مدل سربرا خودش را زیر دست های او رها کرده بود. دهان و دست مادر بزرگ با هم کار می کردند. من جزو اولین زن‌های سیاسی این خراب شده بودم. زن دکتر ابحری خودم دیپلمه بودم و جزء فارغ و تحصیلان مدرسه ی که تهران دکتر خدا نیامرز مرا آلوده ی سیاست کرد او بود که جوانیم را به سیاست فروخت من اولین زنی بودم که به عضویت حزب درآمدم. جلسه از پی جلسه، سخنرانی از پی سخنرانی خواندن نوشتن، ساده زیستی وای که چه روزگاری بود یک روزگار سگیه به تمام معنا. دکتر می دوید و من به دنبالش در نشست های کمیته مرکزی تصمیم ها گرفته می شد. راستش تصمیم ها گرفته شده بود در این نشستها تصمیم ها میشد. می شد. مازنها که دمان کم بود بیشتر برای تصمین مجلس انتخاب شده بودیم. این را از نگاه هایی که گاه ساقپ من را هدف قرار میداد میفهمیدیم. آقایان هزبی با چشم های دریده در عین بحث در خصوص انترناسینالیزم ما را هم دید میزدند. اما ما قضیه را جدی گرفته بودیم. آرایش اصلا و ابدان لباس خوب اصلا و ابدا. من شوق ادبی داشتم. کمیته مرا مأمور کرده بود به اهل هنر و ادب نزدیک شوم. نخستین ملاقات هایم با اهل ادب به نخستین کنگره نویسندگان برمیگردد تیر 1324 بود. همانجا بود که صادق هدایت را دیدم. بعضی از آثارش را خوانده بودم. راستش چیز سر در بودم اما در آن جلسه پرت و پلاهایی سرهم کردم و با او باب گفتگو را گشودم مثل پسر بچه های تازه بالغ تا بناگوش سرخ شده بود قسم میخورم این مرد هرگز توان اینکه زنی را در آغوش بگیرد نداشت یک نص ترونی را در او حس میکردم بعدها هر وقت فرصتی پیش میآمد با او حرف میزدم آدم کم حرفی بود مخصوصا با خانومها خیلی کم حرف میزد وحشت ذاتی از این جنس داشت بعدها خیلی بعد وقتی که دیگر دیر شده بود فهمیدم حزب مرا آلاتی برای جذب صادق کرده بود اصلا از اولش هم ما آلت دست بودیم بیشتر از آلت دست اشیای تزئینی بودیم اشیایی که برای پوزدادن وجودشان لازم و ضروری است یازده سال از بهترین سالهای عمرم رو پای این حزب لعنتی که معلوم نبود چه میگوید و چه میخواهد گذاشتم بعد از آن کودتا و آن به گیروبه بند، دکتر اپری گم و گور شد و من مدتی به منزل خاندائیم در شمیرانات رفتم. اپری شش ماه بعد از موسکو برایم نامه داد و گفت که امکان بازگشتش نیست و بهتر است من هم فکری به حال خود بکنم. روزهای وحشتناکی را گذراندم. مرگ صادق در سال 1330 چیزی را در درونم تکان داده بود. او را میشناختم و فکر می کردم بخشی از وجودم با مردن او مرده است. در آن روزهای بیپناهی و سرخوردگی دوباره آثارش را خواندم کینه عذلی از حزب در دل داشتم. احساس می کردم آن حزب لعنتی اصاره زندگیم را کشیده است و مثل یک بی بیمصرف به در راهای درک پرتم کرده است. همان روزها بود که آن تصمیم عجیب را گرفتم. راستش خودم نگرفتم. صادق آن تصمیم را گرفت. احساس می کردم به نحوه حیرت در درونم حضور دارد، دو پلاکارت آماده کردم روی یکی به حکومت بد و بیراه گفته بودم و روی یکی حزب را خائن و فریب کار نامیده بودم. پلاکارت را چنان آماده کرده بودم که می توانستم آنها را تا کنم و در کیف دستیم بگذارم. دو چوب کوچک و یک شیشه نفت هم برداشتم و صبح زود به بهانه خرید همراه خوانداییم به گلو بندک رفتم. داییم هجره در بازار تهران داشت و هر هفته سه شب را پیش راضی خانم در درک تهران میگذرانند. و چهار شب هم پیش زن دیگرش افت خانون بود که خیابان مختری منزل داشت. راضیه خانون بیماری سل داشت. برای همین هم به منطقه خوش آب و هوای درک نقل مکان کرده بود. بگذریم: از ماشین خاندهی که پیاده شدم یک راست به میدان توب خانه آمدم. همه چیز را ده ها بار در ذهنم کنترل کردم. به میدان که می رسیدم ها را در یک فرصت مناسب از کیفم بیرون می آوردم. آنها را بر سر چوبهای کوچک نصب میکردم شیشه نفت را روی خودم میریختم و کبریت میکشیدم کشیدم آن وقت هنوز جای مناسبی برای انجام کارم پیدا نکرده بودم که کسی گفت سلام عرز شد خانم اكرم اسادات برگشتم و همان زمان بود که مرگ از دستهایم گریخت زیرا در چشمهای حاج عبدالحسن جورابچی زندگی را دیدم عبدالحسن با من نسبت خویشاوندی دوری داشت مدتها بود ندیده بودمش اما می دانستم زنش سرزا رفته است و یک دختر هشت ساله روی دستش مانده است. خدا بیامرز با یک نگاه، با یک سلام زندگی مرا دگرگون کرد. هفت ماه بعد تو خانه پدر بودم و از همین خاله ریحانت که خاله ناتنیت است مواظبت می کردم. نه، اینان چیزی نبود که میخواستم از مادربزرگ بسازم. حتم ظریفه از او داستانی ماندنی خواهد ساخت. ذهن زنانه او با زبان زنانه مادر بزرگ اثری قابل تأمل خلق خواهند کرد او به جزئیات خواهد پرداخت و مادر بزرگ را در میان اشیاء، آدمها و زمانه به گردش در خواهد آورد نه این مادر بزرگ نبود مادر بزرگ چیزی بیش از این به های راست و دروغ بود من باید به درون او نغمی می‌زدم باید نیات پشت اعمال و افعال او را در میافتم. این زن میتوانست هر زنی باشد که سرگذشتش را داخل اتوبوس برای بغل لستیش تعریف میکند. میدانم باز هم ظریف پیروز این میدان است. باید سرگذشت دیگری بسازم. باید خاطره دیگری را داستانی کنم. باید به سراغ کسی بروم که ظریف او را نمیشه و نمیتواند بسازدش. باید به سراغ مادر بزرگ حبیب خاتون بروم او را با بوهای اتاری به یاد میآورم پیرزنی ریز اندام چروکیده بابوی دارچین، زعفران، هل و هنا با آجیل مشکل گشا، و توت خشکه و انجیر قیتانی با قصه های جن و پری، دیف های بالدار پرندگان سخنگو، شاهصاد خانوم های نگونبخت پار خوشبخت، برادران رقیب، خواهران حسود، پدرهای دم مرگ، مادرهای زبر و زرنگ. مادر بزرگ روی داشکچه قرمز رنگش نشسته بود و به پشتی ترکمنی تکی داده بود و نی قلیان را در دستش گرفته بود. و ما، من و محتاب، به عروسک داخل تنگ آب قلیانش خیره شده بودیم. مادر بزرگ سراسر سیاه پوشیده بود و موهای یک دست سفیدش آن سیاهی به او شکل ترسناکی داده بود. پدربزرگ بزرگ تازه فوت کرده بود. تازه که نه، ولی برای مادر بزرگ همین تیروز بود. دود حلقه حلقه از سراخهای تنگ بینی مادر بزرگ بیرون میآمد و در فضا مثل مار می رخزید. من محصور محو شدن آن مارهای رقصان بودم. مادر بزرگ همگاه سرش را به پشتی کمنی تکیه میداد و با چشمان بسته آن مارهای پرپیچ و خم دودی شکل را تا سقف کوتاه اتاق دنبال می کرد. محتاب بود که همیشه می گفت مادر بزرگ اوسنه اوسنه من می گفتم بسه مادر بزرگ قصه برامون بگو مادر بزرگ میشنید. اما نشنیده میگرفت و ما من منو مهتاب میدانستیم دارد در ذهنش قصهای برای من جمع و جور میکند پس صبر میکردیم مثل اینکه خودمان هم مشغول ساختن قصه باشیم بعد مادربزرگ سرش را از پشتی جدا میکرد نی قلیان را به طرف مان تکان میداد و میگفت خوب گوش کنید او برای عبرت است بازیگوشی بی بازیگوشی من جا به جا می شدم محتاب دستش را زیر چانهش میگذاشت و به چشمای مادر بزرگ میزد. می اگر اگرچه وقتی پیرزن زیر گنبد کبود می نشست محتاب هم از زل زدن به چشمای میشی مادر بزرگ میشد و چشمایش شروع به بازیگوشی گوشی کرد یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود پیر نشسته بود. در روزگارهای خیلی خیلی دور توی یک شب خیلی سرد وقتی ننه سرما جول و پلاسش و همه جا پخش و پلا کرده بود توی یک خونه گلی کنار یک اجاق سنگی دوازده تا مرد با هم شبچره می خوردند هوهوی باد توی شاخه بلند درخت های سپیدار می و ترس تو دل مردها ها لتههای در و پنجره به هم میخورد مردها تند و تند تخمه میخوردند نمیخواستند صدای هوهوی باد را بشنوند اما وقتی لتههای پنجره باز شد و پرندهای که بیشتر به یک یا کریم شبیه بود لب پنجره نشست همشون ساکت و خاموش شدند پرنده گفت من روح یک مرده هستم اومدم شماها رو به یک مهمونی درست و حسابی دعوت کنم مردها اول جا خوردند بعد که پرنده از غذاهای لذیذ و میوه های تازه هر زد، کم کم حالشون جا اومد پرنده نشونی قبرستون و قبر خودش رو به مردها داد و گفت وقتی اومدند ست تقه به سنگ قبر بزنند بعد پرکشید و رفت شب بعد شش نفر از پردل و جرعت ترین مردها خودشون رو به نشونی که پرنده داده بود رسوندند ست تا به سنگ قبر زدند سنگ قبر بالا رفت و در قبر باز شد مردها با ترس و لرز یکی یکی وارد قبر شدند خدایا؟ چه میدیدند یک باغ زیبا یک قصر باشکوه رفتن داخل قصر دیگه از چیزی نمیترسیدند سفره رنگارنگی کف یک اتاق بزرگ انداخته شده بود مردها که در عمرشون این همه غذا جا ندیده بودند نشستند به خوردن خوردند و نوشیدند همچین که سیر و پر شدند، از همون راهی که اومده بودند برگشتند. سنگ قبر رو که بالا زدند، قدم که به بیرون قبر گذاشتند، همه چیز تغییر کرده بود. موهای سر و ریششون بلند شده بود. ناخنهای دست و پایشان دراز شده بود. پس قبرستان خبری نبود. نه درختی بود. نه خیابانی، نه شهری مردها به هم نگاه کردند همه چیز رو فهمیدند. آن مهمانی سالها و سالها طول کشیده بود و شاید هم قرنها حالا این مردها چه باید می کردند با آن حیبت، با آن ریش و پش با آن چنگال ها و ناخن های دراز هیچ کار باید سرشان را میگذاشتند زمین و می مردند. این تنها کاری بود که میتونستن انجام بدن قصه همین بود اما مادر بزرگ چی شد قرار بود من قصه مادربزرگ مادر بزرگ رو بنویسم مادر بزرگ قصه نداشت او قصه بود مادربزرگ در زمان حرکت نمی کرد. او راوی قصه هایی بود که اگر زمان نبود هرگز ساخته نمیشدند گاهی احساس میکنم او مثل انسان های قارنشین که با نقش کردن پیکره یک کیوان وحشی آن را در چنبره خود میگرفتند. با روایت قصه هایی که مبنایشان زمان بود سعی می کرد زمان را در تصرف خود بگیرد او ورای زمان و شاید خود زمان بود. آن پیکر نحیف، آن موهای سپید، آن صدای رسا، آن چشمهای تسخیر کننده. آیا این همه زمان نبود؟ همانطور که آن سگ منتظر مرگ بود. زمان حضم یک زن است. زیرا همه چیز در آن و با آن حیات میابد. شاید هوا هم همان زمان بود، که با ورود به عالم بی زمان آدم و عدن همه چیز را به سمت و سوی دیگری کشاند. نه، زمان مرد است. زمان قادر و مسلط است. سلطگر و ویرانگر است. پس چرا من زمان را در حیبت در بزرگ حبیب خاتون میدیدم؟ چه چیزی در آن زن بود که او را بانوی زمان می کرد؟ محمود تاجی می گفت زمان نبس زندگی است. نبس زندگی در جنگ، سول، بیماری و شادی می تبد. زمان را چگونه می گیرند؟ آیا نبس زمان در وجود من می نه. من خارج از زمان ایستادم. من در برزخ زندگی و مرگ داستانهایم را روایت می کنم. اصلا شاید من مردم و نگاه آن همراه من مرده است نه من روایت می کنم. پس من زندم تنها رقیب مرگ داستان و روایت است باید شهرزاد درونم را پروبال بدم باید او را با پادشاه مرگ رو در رو کنم باید بگویم مرگ در سیتره اوست یا او در سیتره مرگ چرا جوانی که در شادکامی زیسته است چنین این تلخ می نویسد چرا روایت او از سعید این گونه بود آیا مرگ مادرش او را رفیق و همدم مرگ کرده است هیچ کدام از بچه ها چون این روایتی از موقعیت سعید ننوشته بودند چطور به ذهن من خطور نکرد که ممکن است سعید یک زندگی ذهنی داشته باشد مگر میتوان هفده سال بدون خاطره، بدون گذشته، بدون زندگی زنده ماند. نکند سعید رابطه منو من و خودش را در ذهنش باسازی کرده است. نکند من در ذهن او زنده ام؟ نکند صدایم را میشنود. چرا با او حرف نمیزنم؟ چرا به تنهایی به دیدنش نمی آیم؟ چرا برایش قصه نمیخوانم؟ چرا او را سوژه داستانی کردم؟ یک موجود آزمایشگاهی چه چیزی در من تغییر کرده است؟ آیا هنوز او را دوست دارم؟ این موجود نباتی را؟ آیا نمی او را به زندگی برگردانم؟ آیا روحامی جوان او را بهتر از من ندیده و درک نکرده است؟ چرا وقتی او را یافتم به جای پرداختن به او به دنبال خانوادهاش گشتم؟ شاید میخواستم او را تطهیر کنم و سرشار از عشق. برای همین وقتی فهمیدم بعد از جریان سی خورداد سال شست و در پی دستگیری برادرش حمید و اعدام دوستش علی راهی جبهه شده تا از سوء زن نجات یابد مثل یک موجود مقدس، یک امام زاده. هر پنج شنبه با اصول آیین به سراغش آمدم تا نه او که خودم را تقدیس کنم. اگر او به راستی زریفهی می داشت و در یک تصادف همراه با او به چنین روزی میافتاد زیارت پنج شنبه ها همچنان برقرار می ماند. آیا ما در هر رابطه خودمان را باز نمیابیم؟ خودمان را تطیر و تقدیس نمی کنیم؟ راستی چرا روحامی جوان داستانش را با تحکید بر رابطگی شهرزاد و پادشاه به پایان برده است؟ آیا من نمی توانم شهرزادی باشم که سعید را از سیتره مرگ می رهاند؟ چهار رفتند. روحامی جوان اصرار داشت بماند تا مرا با خود ببرد. دلم میخواست خواست راجع داستان کوتاهش با او صحبت می کردم. اما بیشتر از آن دلم میخواست با رعنا حرف بزنم. فکر می کردم حتم رعنا حرفهای نگفته بسیاری دارد که به من بگوید. دلم میخواست رعنا از رابطه من و سعید حرف می‌زد و می‌گفت سعید هنوز زنده است به خاطر آن عشق و به خاطر قراری که با من گذاشته اما رعنا از همه چیز گفت الا آنچه من دلم میخواست بشنوم سعید روز که خرداد سال شست وارد تهران می‌شود از همان ابتدای ورودش می‌فهمد در شهر خبرهایی است چهرهی شهر عوض شده اینجا آنجا جلوش را می گیرند و ساکش را بازرسی می کنند. همه از بگیر و به بند در روز قبل حرف میزنند. رانندی سواری که او را از ترمینال سوار می کند تا به خانه برساند از نکبتی میگوید که زود دامان انقلاب را گرفته است. او از خشونت حرف میزند و آن را آغاز یک دوره تازه در تاریخ ایران می وضع خانه مثل وضع شهر به هم ریخته است. همید ناپدید شده است. همه حدث میزنند جزء دستگیر شدگان روز قبل باشد. پدر به ویلای کرج حاج عمو پناه برده است. مادر سراسیمه همه خانه را زیر و رو می کند تا آثار جرم را از بین ببرد. حتی لای کتاب های درسی حمید را می گردد. تکبیت ها و جمله قصار را از حاشیه صفحات پاک می کند. مادر سعید را به زیرزمین میبرد تا پنهان کند. سعید گیج شده است. ترس مادر را بیمورد می‌داند و مقاومت می‌کند و بالاخره مادر در هم می‌شکند و آنچه را سعی در نگفتنش دارد میگوید. علی را دیشب تیرباران کردند به جرم فل ارز بودند نامش در صدر لیست اعدام شدگان بوده و سعید همان شب تلفنی میفهمد همه اعضای خانواده علی متواری شدند. جز مادر بزرگ پیرش که گوشی تلفن را برداشته و بیست دقیقه از روز شوم بیست و هشت مرداد سال 1332 حرف زده و مدام گفته مهم سلامتی پیرمرد است و جان ست تا مثل نوش علی و پسرش عبدالرزا فدای یک موی سپید پیرمرد و در جواب پرسش ابلهانه مادر سعید که پرسیده بود این پیرمرد مرد کی هست؟ با پرخاش گفته بود مصدق سعید را به زیر زمین برده بودند نه یک روز که سه هفته و زمانی که حکم پانزده سال زندان حمید صادر شده بود سعید مبهوت از آنچه اتفاق افتاده بود از آن زیرزمین نمور و پر از بوی سرکه و سیر بیرون آمده بود و سری به کوچه و خیابان زده بود. و در یکی از همین خیابان گردی بی هدف به جرم حرکت های مشکوک به کمیته محل برده شده بود و آنجا دوست دوران دبیرستانش محمود تاجی نجاتش داده بود. او را ترک موتورش سوار کرده بود و به خانه آورده بود. این آغاز رابطه سعید و محمود تاجی بود. رابطه ای که او را دو هفته بعد روانه ی جپه کرده بود. رعنا می گفت و من می شنیدم. هیچ نکته تازهی در حرفایش نبود. این حرف‌ها را یک سال پیش در دیدار اولمان هم گفته بود. من در روایت رعنا وجود نداشتم، نبودم، انگار هرگز وجود نداشتم، انگار هیچ چیز بین من و سعید اتفاق نیفتده بود، انگار نه انگار من فرسنگها دورتر منتظر او بودم. وقتی رعنا دم در آپارتمانم پیاده هم کرد، یک لحظه آن چرا نباید میپرسیدم پرسیدم، سعید راجب من چیزی به شما نگفته؟ رعنا رو بر نگاه هم می کند. احساس می کنم سؤال پرت و جایی پرسیدم. منظورم اینه که هیچ وقت راجب شم حرف نمی زد. چرا چرا؟ خیلی خیلی. می دونید خدا بیا مرز مادرم هم همیشه از مادر شما حرف می زد. دیگر نمی بشنوم در ماشین رو می بندم و می گویم. ممنون. خیلی زحمت کشیدی. رعنا لبخند میزند. به نظرم گیج شده است. همانطور که من گیج و سرگردانم.